کتاب کیمیا اثر نیما شاه سواری وجود خدا آیا خدا وجود دارد سوالی که شاید بسیاری را به درازای طول عمر مشغول خود کرد و در نهایت پاسخش ایمان بود آری ایمان به علم و یا دین چه بسیار آلمان و فلاسفهی که در رد و اثبات وجودیت خدا نگاشتند و اندیشیدند و باز تعین کننده ی وجودیت آفریدگار چیزی نبود جز ایمانشان. کتب قطوری که با اسناد و مدارک بیشمار وجودیت خدا را ثابت کرد و کتبی که با همان طول و عرض در رد وجودیت خدا فریاد زد. لیکن نه تنها خاننده ای که مشتاقانه آن را به دست گرفته و با شوق بسیار ورق میزند و در آخر سینه را سته و از تصمیمش جهانیان را مطلع کرده است که خود نویسنده هم با ایمان به نگاشتن آن کتاب دست بود خاننده ای که در میان جستوخیز به دل نگاشته هایش هر سانیه ایمان خیشتن را دوره کرد و با چنگ انداختن به آن دور گرامبه ها و قدرتمند در جانش یک صدا در کنار معلف اثر فریاد وجود و عدم وجود پروردگار را سر داد. ایمان است تعیین کننده ی وجود خدا در دل انسانها. این قدرت فضاینده در دل هرتن فریاد خاصی سر می دهد. یک بار خدا را خالق بزرگ انسان ها در دل عدیان می بیند و باری خالق جهان نظم است و طبیعت و ماده و یا پوچی و سرآخر خدایی که وجود دارد فارغ از ادیان و به تازگی خانه اش را از عدن به دورترها منتقل کرده است آن جماعت چشم به راه آرام و درگوشی از خود خداوند جوگای طریقت تازه شدند هیچ علم و منطق و استدلالی بی مدد از ایمان به قد سخن نمی راند تا به امروز چند کتاب در باب وجود و یا ناجود بودن خدا خوانده اید چندین نظریه پیرامون انکار وجودیت خدا مورد مطالعه قرار داده اید چند کتاب در راستای اثبات وجود خدا دوره کرده و چندین مباحث میان خداباوران و بی خدایان را شنیده، خانده و یا در میانشان خیشتن را دیده اید. آیا جز این است که هر جا تنگنایی در برابر عقایدشان قد علم کند ایمان است که راه گوشای آنان خواهد بود؟ آیا جز این است؟ که دین ارکان ایمان و علم در پسوی افکارش رد پای ایمان نقش بسته است و شاید درک معنای خدا به قلب علم و دین مستلزم سلوک و ارفان بالاتری است اما فکر این است که امروز علم آجز از بیان حقیقت پیرامون وجودیت و اثبات و رد خدا به هر نام در آسمان و زمین است این کودک نوپای علم هنوز جای قد کشیدن دارد و راه طولانی تا را صاف و روزی مختدرانه فریاد زند آری به راستی دریافتم پاسخ این پرسش هزاران ساله را امروز علم نیست که اثبات می کند خدا موجود است یا زاییده خیال انسان امروز ایمان است که بر این مدعا سهه میگذارد فارغ از این دریای کتب و نظریات در جهان آیا فریاد جهان این نیست که خدا وجود دارد؟ این آن حقیقت راسین است و چه ساده آدمیان میتوانند هر ایمانی را مبدل به حقیقت کنند. باید جهان را بیپرده و به حق راسین میان آدمیان در برابر دید و برایش چارندی شید. چند درصد از مردم دنیا مسلمان، مسیحی و یهودی هستند چند درصد از انسان به ادیان دیگر باورمندند که بنیادش به خدا باوری وابسته و در اشکال و اطفار مختلف و گوناگون باز هم در برابر همان خدا باید که به سجود افتاد باز همان خدا بر تخت قدرت جلوسیده و فرمانده بر انسان هاست چند درصد فرایدین خدا را می پرستند. حال به هر طریقت و نام یک بار تحت عنوان طبیعت بار دیگر انسان و الا بی انتها و با این تفاسیر و میان این سیل انبوه چند درصد بر عدم وجود خدا ایمان دارند سخن من حقیقت نیست وجودیت است و چه والاتر و با ارزشتر در جهان که عینیت را به حقیقت بشناسیم فرای دلمشغولی ها که هر روز رنگ به رنگ بر تغییر دادن دنیا برمی و در پوستهای به کوچکی گردو جهان را قضاوت کرده و خویشتن را حق پنداشتیم یک بار جهان را بی آنچه هست ببینیم و بالاتر از مجاز هرچه در برابرمان بود احساس کنیم و به فرجام حق آنچه وجود دارد را با خیشتم و برای همگان تفسیر کنیم حقیقت امروز بر وجودیت و است فرای هر حقیقتی که در علم و فلسفه نهفته باشد حقیقت هم امروز ایمان است و اما تر بیان کردن این مدعا اینکه هر علم فریاد بزند و با مدرک و منطق عدم وجود خدا را به اثبات برساند فرقی در جهان حاصل نیست حداقل در جهان امروزی و با مدد از علم و انسان امروزی جهان را مردمش میسازند و حقیقت میتواند به فریب بدل شود و فریب میتواند جای حقیقت را به اذن انسان بگیرد فرای این سخنان امروز خدا انسان است و انسان خدا ذات انسان، فکر انسان راه انسان راه خداست وجود فیزیکی خدا و یا نبودش دردی از این دنیا کم نخواهد کرد که رزم راستین جهان تغییر ذهن و راه انسان است حال چه خدایی در ها باشد و چه نیستی مالک بر جهان باشد و موشت را نشان خروار در خیشتم باید جست و با خود گفت آیا به واسطه ایمان خدا را موجود ننامیده یا بر نبودش اصرار نورزیده این و حال که با سماجت خدا را علم و یا علم وجودش را نابود کرده بر جهان چیزی افسوده این از دردهای جهان با این کشف بزرگ چیزی کاسته این من که چنین طریقتی تنها در همان کودکی برایم هم موضوعیت داشت و سماجتم برای درک وجود خدا و یا عدم وجودش در همان سالهای پیشین خلاصه شده است که دانه زمین بودن و نبودن ها هیچ از درد جهان نخواهد کاست. و پیشترها هم برای تسکین دل خیشتن به این امر سراسر پوچی و بیفایده اصرار ورزیدم و هر کدام می باز به خیشتن رجوع کنیم و ایمان به هر شکلی را در خیشتن ببینیم و برای چندی با او هم کلام شویم و پس از شناخت این گوهر در دلهایمان بدانیم که آیا وجود یا ناجود خدا دردی از دنیا کم خواهد کرد؟ یک بار به هیچ پوشش و هجابی از خود بپرسیم آیا اگر خدا در آسمان ها نشسته یا ننشسته باشد کودکی از درد فقر آزاد خواهد شد؟ جاندار کمتری رنج خواهد دید یا از تعداد آنها کاسته خواهد شد؟ و نهایت این گپو گفت با ایمانمان من طریقت تازهی در برابر من نقش خواهد بست که برای جهان خیشتن باید خیش در تکاپو بود؟ و از هیچ ورون نگذاشت که عمر در این دریای نام و تلاتم خرچ کردن سمرش غرق شدن و مرگ خواهد بود و اگر با سلامت به ساحلی دست یابین در آن ساحل باس هم هم سابق درد دردمان بیشمار و دردمندانمان من بیشمار تر زندند و ما به طول تمام عمر دست و پا زدیم، نه اینکه آنها را نجات دهیم که بعد از کنکاش و تلف کردن عمر دوباره با آنان روبرو شویم. باز دوباره برگشته و آن ساحل دریای متلاتم و ایمان و همه و همه را به کنار گذاشته از دور میبینیم. بر فرض محال کسی سر براورد و خدای ادیان و هر خدای دیگری در جهان را نفع کرد و باز هم بر فرض محال بشریت یک پارچه رخت خدا هستند برکندند آیا جهان به رهایی و آسایش گام برخواهد داشت؟ سرنوشت فلسفهی که خدا را نشناست چیست جز خدایی تازه در لباس و قبای انسان؟ نگاشتن چنین مقاله شاید بر ما ضرورتی نبود که رزم و طریقت ما سوی و راه است که بنیان از شکستن تفکری به نام خداست و نه وجودیتی چون خدا خدایی به معنای قدرت، خدایی به معنای ظلمت، خدایی به معنای انسانیت و خدایی بیانتها غرق قرق در انسانها لیکن به خود تکلیف دانستم تا دیدگاه خیش را در باب وجودیت خدا اظهار دارم تا بر کسی معمایی پدید نیاید زرهی وجودیت و یا عدم وجودیت خدا بر ما و طریقت ما تأثیر گذار نخواهد بود و در پایان باید گفت که این زمان زنده بودن در طول این سالیان که خیشتن را شناختم آنقدر با ارزش بوده است که عمر را در این مرداب بتالت هدر نکنم و برای رهایی جانداران بکوشم و این داستان کمیتی الهی را که چاره بر دردهای بی‌انتهای جانداران نخواهد داشت به گوشه و برای والاترین ارزش دنیا که جان جانداران است تلاش کنم خدا با وجود و بی وجودش در جهان و میان آدمیان زنده و پاورجاست. و باور به پاکی نبرای جنگیدن با خدا در آسمان ها که خدای بر زمین و این قدرت فضاینده سفارایی میکند تاریشه ظلمت و زشتی قدرت و تبعیض را برکند و به دنیای عینیات میان حقیقت محض برای رهایی جانداران بجنگد و ارزش والایی چون آزار ندیدن دیگر جانداران را اصل و قانون در میان انسانها ها کند و به طول تمام این تلاش‌های مقدس و پاک وجود داشتن خدا یا عدم وجودش ذره‌ای دارای اعتبار نیست و ما برای همین دنیا و میان همین زندگان زنده ایم و برای رهاییشان جنگیم اگر در دور های جهان دیگری علم شد آنجا نیز با همین روح اسیانگر و توقیان نهفته در جان من قد علم کرده و در برابر ظلم و زشتی خواهیم تاخت و تا آخرین نفس ایستادگی میکنیم. این یاغی جانبرکف آمده تا در برابر هر زشتی به هر اندازه قدرتمند و به هر نام بی‌سد و عینیت دنیا همان حقیقت نهفته در آن به حال و در این جهان و میان دنیای انسان‌هاست و برای فردای نادیده دنیای دیده را تباه کردن عین دیوانگی و حماقت است دنیایی به زودی در جهان پدیدار خواهد شد که برای ساختن آن تمام انسان در کنار هم تلاش کرده و در آن والاترین ارزش ها جان جانداران است و این جهان آرمانی پاک و آزاد از سمره تلاش تمام است که عمر را در حقیقت جهان سپری کرده و برای بهبود دنیا کوشیدند و هیچگاه عمر خیشتن را به دریای پوچی هدر ندادند.